پانزده هم در همان دوره کزیمو به نکته شگرفی درباره رفتار جناب وکیل پی برد. چنین می‌نمود که گیجی شوالی کارگاه از سر به هوایی او نیست، بلکه ناشی از وسواسی است که هیچگاه او را رها از چندی پیش زبان باز کرده بود و گاهی حتی پرگویی می‌کرد. برخلاف گذشته که نجوش و گیر بود و هرگز به شهر نمی‌رفت، اکنون یه وقت خود را در بندر می گذارند. با مردم می جوشید در بارانداز کنار دریانوردان و بازرگانان مینشست و درباره آمد و رفته کشتی ها و کارهای دزدان دریایی گپ میزد دزدان دریایی بربر هنوز تا نزدیکی کنار ما می‌آمدند و به فعالیت‌های بازرگانی ما آسیب میزدند دزدان خورده پایی بودند گذشته بود آن زمانی که اگر در دریا به دزدان برمیخوردی یا گوش و بینیت را از دست می‌دادی یا به بردگی سر از الجزیره در می‌آوردی. اکنون تنها به بردن بار کشتی‌های امبروزا بسنده می‌کردند که یا بشکه ماهی نمکسود یا پنیر هلندی و یا پنبه بود. گاهی نیز کشتی‌های ما از آنان پیشی می‌گرفتند از چنگشان می‌گریختند و دوسه تیری به سوی کشتیشان شلیک می‌کردند. بربرها در پاسخ توه میانداختند و ناسزا میگفتند و سر و دست خود را بی ادبانه تکان میدادند. خلاصه اینکه دزدی بی شیل پیله ای بود. سرکرده در توجیه کارهای خود میگفتند که از بازرگانان و کشتی داران ما طلبکارند زیرا در داد و های گذشته با آنان به درستی رفتار نکرده و حتی سر آنان کلاه گذاشتند. هدفشان از آن دزدی ها این بود که حساب خود را خورده خورده پاک کنند. ولی در همان حال داد و ستد عادی نیز با ما داشتند که در آن پیاپی پیمان می و پیمان می شکستند. گسستن این رابطه پرنشیب و فراس به سود هیچ کدام از دو طرف نبود. با آنکه کار کشتیرانی پرخطرانا به سامان شده بود، هیچ کدام از آن درگیری ها به صورت فاجعه در نمی آمد. داستانی را که می خواهم به نویسم، به های گوناگون های از کسیم شنیدم. آن روایتی را می که هم آب و تاب بیشتری دارد و هم منطقی تر می نماید. روشن است که برادرم در بازگویی ماجراهایی که بر سرش میآمد شاخ و برگ بسیاری نیز بر آنها میافزود. از آنجایی که منبع دیگری در دسترس ندارم، میکوشم آنچه را که از او شنیدم به همان گونه باز نویسی کنم. باری در آن زمان که کزیما عادت داشت برای پاسداری از جنگل، در برابر آتش گهگاه از خواب بیدار شود، شبی چشمش به نقطه روشنی افتاد که از دره پایین می‌رفت. گربهوار گربه از شاخی به شاخی رفت و آن را دنبال کرد. اناس سیلویوس کارگاه بود که تونتون می‌رفت و فانوسی در دست داشت. جناب وکیل که چون ماکیان عادت داشت سر شب بخوابد، به چه کاری در آن دیرگاه آنجا پرسه میزد کوزیمو دنبالش میرفت و میگوشید هیچ سر و صدا نکند گرچه میدانست امویش هنگامی که با آن شتاب می رود چیزی را نمیشنود و جز نوک پاهایش چیزی را نمیبیند. شوالیه از کوره راه های لابلای درختان میان بر زد و بهکنارری پوشید از سنگریزه رسید و آنجا ایستاد و به تکان دادن فانوس خود پرداخت ماه نبود به جز کف سفید موج نزدیک کناره هیچ چیز روی دریا دیده نمیشهد رو روی کاجی دور از کنار ایستاده بود. پایین تر از آنجا بیش تناک می شد و به آسانی نمی شد از بالای شاخه ها به هر کجا رفت. با این همه پیرمرد ریز نخشی را که فینه به سر داشت به خوبی می دید. لب دریا ایستاده بود و فانوسش را بالا گرفته بود و تکان می داد. ناگهان از میان تاریکی فانوس دیگری به او پاسخ داد. در همان نزدیکی بود. انگار در همان هنگام آن را روشن کرده بودند کرجی پارویی کوچکی به شتاب پیش آمد. بادبان چهار گوش تیر رنگی داشت که در ناحیه ما معمول نبود. پهلو گرفت. در روشنایی لرزان فانوزها چشم کزیما به چند مرد افتاد که همه دستار به سر داشتند. برخیشان در کرجی ماندند و با حرکت پاروهایشان می آن را نزدیک ساحل نگه دارند. برخی دیگر پیاده شدند. شلوارهای سرخ گشاد و پف کرده به پا و شمشیرهای های خمیده ی رخشندهی به کمر بسته بودند کوزیمو چشم تیز کرد و گوش خواباند امو و بربرها به زبانی گفتگو می کردند که ناشناس بود اما اینگار تنین آشنایی داشت بدون شک همانی بود که زبان صابیر نامیده می شد گهگاه واجه ایتالیایی به گوش کوزیمو می رسید که اناسیلویوس روی آن پا میکرد می کرد. و آن را با واجه های نامفهوم دیگری میامیخت. آن واجه های عاشنا نام کشتی های کوچک و بزرگی بود که میان بندرگاه ما و بندرهای همسایه رفت آمد میکردند و از آن بازرگانان امبروزا بودند. دریافت اینکه شوالیه درباری چه گفتگو میکرد کار دشواری نبود. راهزنان دریایی را از زمان رفت و برگشت کشتی های امبروزا بار و مسیرشان و اسلحهی که داشتن آگاه می پیرمرد همه ی آنچه را که می دانست گفت. برگشت و به شتاب دور شد. و راهزنان به کرجی نشستند و در تاریکی دریا نابدید شدند. از کوتاهی و فشردگی گفتگوهایشان می شد فهمید که کار همیشگیشان است. خدا می داند چه مدت می شد که اموی ما با آن اندوستان دریایی همکاری داشت. کزیما بالای کاج خوشگش زده بود. و یارای دور شدن از آن کناری خلوت را نداشت باد میوزید دریا سنگ ها را میلیسید و میجوید و بند, بند شاخه های درختان ناله میکرد دندان های برادرم به هم میخورد و این از سرما نبود از حقیقت دردناکی بود که ناگهان به آن پی برده بود آن پیرمرد کم روی اسرارامیز که ما در کودکی همواره به او بیاعتماد بودیم و کازیمو رفته رفته از او خوشش آمده بود و برایش دل می سوزند ناگهان مردی خائن عذاب در آمده بود که نمیشد بخشیدش ناکس نمک نشناسی بود که علیه کشوری کار میکرد که او را پس از عمری در بدری و بدکاری با آغوش باز پذیرفته بود چرا این کار را می کرد؟ آیا حسرت جاه و مردمانی که تنها یک بار در زندگی خود در میان آنان مزه خوشی را چشیده بود او را به این همه نامردی وامی داشت آیا سرزمینی که هر لغم نانش برای او خاری آور بود کینه ای نگفتنی به دل داشت؟ برادرم نمیدانست چه کند. می هر هرچه زود آن جاسوس را افشا کند تا بارها و کشتیهای بازرگانان خودی را از تاراج در امان بدارد. ولی می پدرمان را که به گونه شگرفی نابرادری خود را دوست می داشت دوچار قصد کند. پیشبینی می کرد که چه خواهد شد؟ مجسم می کرد که شوالیه دست بند به دست همراه پاسبانان از میان انبوهی از مردمان امبروزا میگذرد و همه به او ناسزا میگویند سپس او را به میدانی میبرند ریسمانی به گردنش میاندازند و به دارش میزنند از هنگامی که سراسر شب را در کنار جنازه جوانی خلنگ گذراند با خود پیمان بسته بود که هرگز به تماشای دار زدن کسی نرود و حال میدید که خود او میتواند یکی از خیشان نزدیکش را به مرگ محکوم این فکر در سراسر آن شب و فردایش او را آزار می داد. گونه که در هنگام نگرانی و سرگشتگی عادتش بود، دیوان از شاخهی به شاخهی دیگر می پرید. جست و خیز می کرد و از تنه درختان سر می خورد و پایین می رفت. سرانجام این راه چاره را پیدا کرد که امو و دوستان دریایی را بترساند به گونه ای که خودشان رابطه خود را به هم بزنند و دیگر نیازی به پادرمیانی میانی نباشد. آن شد که شب هنگام با سه چهار تفنگ پر بالای درخت کاج پنان شود. رفته رفته دارای چندی سلاح شده بود که آنها را برای شکارهای گوناگون به کار می برد. نخشش این بود که هنگام دیدار شوالیه و دزدان دریایی تفنگ‌ها را یکی پس از دیگری آتش کند و گلوله ها را از بالای سر آنها بگذراند. به گونه عمون و دزدان هر کدام از سوی گریختند و شوالیه که مرد ترسویی بود دیگر به دیدن دزدان دریایی نمیرفت چه میدانست که محل دیدارش با آنان زیر نظر است و میترسید که شناخته شود. کوزیمو با تفنگ های آمادهش دو شب بالای درخت منتظر ماند و خبری نشد. سرانجام در شب سوم پیرمرد جستان و خیزان از راه رسید و خود را به کناری پر از سنگریزه رساند. دوباره فانوسش را تکان داد و باز همان کرجید با سرنشینان دستار به سر به ساحل آمد دستش را به ما رساند اما آن را نچگاند زیرا روی دادهای آن شب حالت دیگری داشت دو از دزدان پس از گفتگوی کوتاهی با امو رو به کرجی کردند و دست خود را تکان دادند دیگران دست به کار پایین آوردن بار کرجی شدند که بشکه و جعبه و صندوق و کیسه و قرابه و های بزرگ پوشیده از های پنیر بود تنها یک کرجی در کار نبود انبوهی از کرجی و قایق پر از بار به گرفته بود. صفی از باربران دستار به سر روی ساحل به راه افتادند و عموی ناتنی ما با گام های جستان و خیزان در پیشاپیششان پیششان به راه افتاد و به قاری در میان تخت سنگ ساحلی راهنماییشان کرد. همه بارها را که بیشک دستاورد تازه ترین دزدی های دریاییشان بود آنجا پنهان کردند. بعدها روشن شد که چرا این کار را میکردند. هنگامی که کشتی برای کارهای مربوط به باربری و داد و ستد عادی در یکی از بندرهای مالنگر میانداخت مأموران گمرک آنها را وارسی میکردند از این رو لازم بود که بارهای دزدی را در جایی پنهان کنند و در راه بازگشت دوباره آنها را بردارند به دینگونه چونین چنین می‌نمود که کشتی آنان هیچ دخالتی در دزدی های تازه نداشته است و داد و سطد عادی میان دو کشور گسترش بیشتری می جزئیات ماجرا بعدها روشن شد ولی در آن شب کوزیما نخواست فرصت را بیهوده از دست بدهد و به این گونه چیزها فکر کند دوستان گنجینه ای را در قاری پنهان کردند سوار کشتیشان شدند و رفتند باید هرچه چه زودتر آن گنجینه از آنجا برداشته میشد کوزیما یک لحظه به این فکر افتاد که به سراغ بازرگانان امبروزا برود و آنان را که صاحبان قانونی بارها بودند از خواب بیدار کند اما به یاد دوستان زغالکارش افتاد که با خانواده هایشان در جنگل به سر می بردند و گرسنگی می کشیدند. دیگر درنگ نکرد از بالای درختان دوان دوان خود را به کپرهایی رساند که زغالکاران در آنها می خابیدند. زود باشید، همهتان بیایید انبار دوستهای دریایی را پیدا کردم! از زیر چادرها و کپرها صدای سرفه و به گوش رسید. چند فریادتننی انداخت و سپس سر و صدا شد و چند نفر پرسیدند، چه آنجاست؟ تلا؟ نقره؟ کسیمو گفت درست ندیدم اما از بویی که شنیدم فکر میکنم مقدار زیادی ماهی و پنیر تون باشد. با شنیدن این گفته همه مردان جنگل نشین بلند شدند. کسانی که تفنگی داشتن آن را به دست گرفتند. دیگران تبر و چنگک و تیشه خود را برداشتند. اما از این مهمتر هر کدام زرفی به دست گرفتند تا آن را از چیزهای درون قار پر کنند. برخیشان حتی سبدهای های و گونیهای های زغالی همراه بردند دسته بزرگی به راه افتاد حتی زنان نیز سبدی را روی سر گذاشتند و راهی شدند و کودکانی گونی به سر و مشعل به دست همراهشان رفتند کزیما از سروی به زیتونی و از زیتونی به کاجی می پرید و پیشا پیششان میرفت. به پای تخت سنگ کنار قار رسیده بودند که ناگهان چشمشان به پیکره سفید دستی افتاد که روی شاخه های کج و زیتونی جا گرفته بود. دوست با دیدن آنان شمشیرش را بیرون کشید و فریاد زنان هم دستانش را خبر کرد. کوزیما با چند خیز خود را به بالای سر او رساند و با یک حرکت شمشیرش را در پشت او فرو کرد. به گونه ای که با سر به روی سخره ها افتاد. سرکردگان دزدان در قار گرده هم آمده بودند. در گرم رفته آمده باربران. کسی متوجه نشده بود که آنان در قار مانده با شنیدن فریادهای نگهبانی که در بیرون از قار گماشته شده بود همه دزدان بیرون آمدند و خود را با گله ای مرد و زن کیسه به سر و بیل به دست روبرو دیدند که همه چهره های کثیف و زغالی داشتند شمشیرهایشان را بیرون کشیدند و نعر زنان به پیش تاختند تا راهی برای خود باز کنند شمار زغال کاران بیشتر بود ولی دزدان دریایی سلاح های بهتری داشتند شاید هم نه زیرا همه میدانند که در برابر شمشیر هیچ جنگافزاری بهتر از بیل نیست با هر ضربه بیل شمشیرهای مراکشیک کند میشد و از کار میافتاد اما تفنگهای زغالکاران جز دود و سر و صدا کار دیگری نمیکرد. برخی از دزدان نیز که گویا افسر بودند تفنگهای زیبای گرانبهایی داشتند اما در هوای درون قار نم برداشته بود و آتش نمی کرد. زرنگترین زغالکاران میکوشیدند ضربه بیلی به سر افسران بزنند و آنان را از پا در و توفنگهایشان را از آن خود کنند. اما دستارهایی که آنان به سر داشتند ضربه بیل را بی اثر میکرد. کاری تر از همه زربه هایی بود که با کنده پا به شکم بربرها میزدند. زیرا شکم‌هایشان برهنه بود تنها جنگافسری که به فراوانی پیدا میشد قلب سنگ بود زغالکاران دست به کار سنگپرانی شدند دزدان نیز دست به سنگ بردند، در نتیجه نبرد حالت منظمتری به خود گرفت ولی از آنجا که بوی ماهی نمکسود، زغالکاران را بی اختیار به سوی قار می کشید و همه کوشش بربرها این بود که از قار به سوی کرجی لبه دریا بگریزند انگیزه چندان نیرومندی برای پیکار وجود نداشت زغالکاران با یورشی راه قار را باز کردند دزدان دریایی همچنان در زیر باران قلوه سنگ پایداری می‌کردند که ناگهان دیدند راه دریا باز شده است. دیگر درگیری چه سودی داشت. بهتران بود که به کرجی بنشینند و بروند. ستن از سرکردگان راه زنان خود را به کرجی رساندند و بادبان را باز کردند. خوزی ما از روی شاخه کاجی که در نزدیکی دریا بود به سوی دکل کرجی خیز برداشت و با یک جهش خود را به آن رسند. روی بازوی دکل جا گرفت و شمشیرش را بیرون کشید. آن های آخته به سوی او رفتند. برادرم شمشیرش را به چپ و راست میچرخاند و آنان را از خود دور نگه می‌داشت. هنوز نیمی از کرجی روی خشکی بود و گاه به سوی ساحل و گاه به سوی آب خم میشد. ناگهان تیغ‌های سرهازن و شمشیری که بارون به برادرم داده بود در پرتو ما درخشیدن گرفت. کزیما از دکل به پایین سرید و شمشیر خود را در سینه یکی از راهزنان فرو کرد که از کرجی پایین افتاد. به چابکی مارمولکی از دکل پایین و بالا می رفت و از خود در برابر حمله های دو دوز دفاع می کرد تا اینکه یکی دیگر از آنان را از پادر آورد و پس از درگیری کوتاهی با دزد سوم سینه او را نیز شکافت. تن بی جان هر روی لبه کرجی افتاده بود. نیمی از تنشان در آب شناور بود و ریش هایشان با خزه دریا می آمیخت. دوزدان دیگر با زربه های بیل یا قلب سنگ از پادر آمده و در کنار در قار به زمین افتاده بودند. کزیما همچنان که به دکل چسبیده بود، نگاهی پیروزمندانه به پیرامون خود انداخت و ناگهان چشمش به جناب شوالی وکیل افتاد که با شتاب گربهی که دو را تشدده باشند از نهانگاه خود در قار بیرون جهید. همچنان که سر خود را پایین گرفته بود، به دو خود را به کراجی رساند با فشار آن را به جلو سراند و به آب انداخت سپس به درون آن جهید و دو پارو به دست گرفت و با همه توانی که داشت آن را از کنار دور کرد کوزیمو که روی بازوی دکر جا گرفته بود فریاد زد چیکار شو چوبادیه دیوانه شده اید برگردید به ساحل کجا دارید میروید؟ بله روشن بود که انا سیلویوس کارگا می می‌خواهد خود را به کشتی دوستان دریایی برساند و از معرکه جان به در ببرد دستش برای همه رو شده بود و اگر در ساحل میماند کارش به بالای دار می کشید. پارو میزد، پارو میزد و کازیمو شمشیر آخته در دست نمیدانست با آن پیرمرد ناتوان بیصلا چه کند. خوش نداشت به او که به هر حال امویش بود آسیبی برساند. از این گذشته برای اینکه دستش به او برسد لازم بود که از دکل پایین برود. این مسئله مطرح بود که آیا اگر پایش به کف کرجی برسد به معنی آن نیست که روی زمین پا گذاشته است و حتی اینکه آیا با پریدن روی دکل کرجی که تنه درختی بیریشه بود قانون اساسی زندگی خود را زیر پا نگذاشته بود اما این مسئله پیچیده تر از آن بود که در آن لحظه به توان ای برایش پیدا کرد این بود که روی بازوی دکل نشسته بود و نمی دانست چه کند همراه با حرکت کرجی تکان می‌خورد. نسیمی در بادبان و پیرمرد. همچنان پارو میزد. ناگهان صدای پارس سگی به گوش رسید و کزیما از خوشحالی بر جا جهید. افتیموس مکسیموس که در گرماگرم گرم پیکار ناپدید شده بود روی کف کرجی خوابیده بود و بیخیالان دم تکان میداد. داد. با خود گفت که چندان هم جای نگرانی نیست. هرچه بود همراه خانواده بود. با امو و سگ مهربانش در کرجی نشسته بود و روی دریا می گشت. پس از آن همه سالهای درخت نشینی تنوعی بود. دریا در روشنای محتاب می پیرمرد کم کم خسته می‌شد. دیگر توان پارو زدن نداشت. گریه می کرد. پیاپی می گفت. آه زهیر. آه خدا خدا. زهیر. آه زهیر. همچنان که عشق میریخ چیزهایی به ترکی میگفت که در لابلای آن نام زنی شنیده میشد. نامی که کزیمو تا آن زمان نشنیده بود. پرسید؟ چه میگویید شوالیه؟ چتان است؟ داریم کجا میرویم پیرمرد همچنان میگفت زعیر آه زعیر آه. این زعیر کیست شوالیه؟ فکر می کنید اگر از این طرف بروید می توانید خودتان را به او برسانید؟ اناس سیلویوس کارگاه به نشانه تایید تعیید سرتکان میداد و عشق می ریخت و چیزهایی به ترکی می گفت به ماه می کرد و نام ضعیر را داد میزد. با شنیدن این گفته ها به گمان زنی پرداخت شاید سرانجام راز زندگی آن پیرمرد گوشگی را از رارامیز آشکار می شد شوالیه می خواست خود را به کشتی دزدان دریایی برساند. تا به از را پیدا کند پس شاید آن زن از مردمان سرزمین عثمانی بود شاید آنچه همواره انعاس را آزار می داد حسرت عشقی از دست داده بود شاید با زنبورداری و آبیاری می خواست، یاد آن دوران خوش از دست رفته را زنده کند شاید آن زن معشوقی او یا همسرش بود که با او در باغهای سرسبز آن آنسوی دریاها زندگی کرده بود یا شاید دخترکی بود دخترکی که از دوران کودکی نتوانسته بود او را ببیند به خاطر همو بود که سالهای سال کوشیده بود با کشتی‌های ترک یا بربر بر رابطه برقرار کند و گویا سرانجام توانسته بود از او خبری بدست آورد شاید شنیده بود که دخترک را به کنیزی بردند و برای بازخرید او با دستان دریایی همکاری میکرد. یا شاید می‌بایست چیزی به آنان بپردازد تا بپذیرند که او را با خود به سرزمین ظعیر ببرند اکنون که دستش رو شده بود باید از امبروزا میگریخت. دزدان این نداشتن که او را سوار کشته خود کنند و به سوی ظعیر ببرند. گفته های بریده بریدهاش گهگا لحنی امیدوارانه و التماس‌آمیز به خود می‌گرفت، گاهی نیز هر میشد. می‌شد. نکند که این بار نیز نتواند. مباد و مشکلی پیش بیاید و باز او نتواند به معشوق خود برسد. دیگر توان پارو زدن نداشت. آنگاه بود که سایه نزدیک شد. کرجی دیگری بود که پیش می آمد. بیشک سر شک سراسدای نبرد به کشتی رسیده بود و کسانی را فرستاده بودند تا ببینند چه خبر است. کوزیمو ها نیمه دکل با این رفت تا خود را پشت بادبان پنهان کند. پیرمرد به زبان صابیر فریاد زد که میخواهد سوار کشتی شود. بازوهایش را بلند کرد. دو ینیچری دستار به سر خود را به او رساندند. چون پر کاهی بلندش کردند و روی کرجی خود گذاشتند بر اثر حرکت آنان کراجی کزیما زده شد باد به باد بان آن افتاد و برادرم که مرگ را جلوی چشم خود میدید از نگاه آنان پنهان ماند باد کرجی کازیما را دور می کرد با این همه سر و صدای بگو مگوی از کشتی به گوش او میرسید یکی از واژه که در لابلای گفته های گفته شنیده میشد به واژه نامرد شوید بود که پیرمرد در پاسخ آن پیاپی می گفت آه زعیر از آن به گومگو روشن بود که پیشواز چندان گرمی از او نکردند بیشک دزدان دریایی او را مسئول آن نهانگا تاراج کالاهای دزدی و کشت شدن یارانشان می دانستند و او را به خیانت متهم میکردند کردند فریادی و سپس صدای چلپی در آب شنیده شد سپس سکوت شد آنگاه کزیمو پنداشت که صدای پدرش را به روشنی میشنود که در جستجوی برادر ناتنیاش به هر سو می رود و فریاد می زند اناس سیلویوس اناس سیلویوس چهره خود را در پس بادبان کرجی پنهان کرد از دکل بالا رفت تا ببیند کرجی به کدام سو می رود چیزی روی آبشناور بود که گویی محچهای دریان را با خود می برد چیزی همانند نشانه‌های شناور روی آب بود اما دم داشت پرتوی از ماه آن را روشن کرد نشانه شناور نبود سر آدمی بود که فینه‌ای منگوله دار رویش دیده میشد. کوزیما شوالیه را شناخت سرش کج نگاهش وحشت زده و دهانش باز بود تنش از ریش به پایین در آب فرو رفته بود و دیده نمیشد. کزیمو فریاد زد شوالیه شوالیه چه کار میکنید؟ چرا نمی بالا؟ لبه قایق را بگیرید کمکتا میکنم که بیایید بالا شوالیه ولی امون پاسخی نمیداد. همچنان شناور بود با چشمانی حراسان به هوا نگاه میکرد و انگار چیزی نمیدید دید کزیمو فریاد زد زود باش اپتیموس مکسیموس بپر آب گردن شوالیه را بگیر نجاتش بده نجاتش بده سگ فرمان باردار به آب پرید. کوشید گردن پیرمرد را بگیرد اما نتوانست ریشش را گرفت کوزیما باز داد زد گفتم گردنش را بگیر اپتیموس ماکسیموس ولی سگ سر شوالیه را بلند کرد و روی لبه کرجی گذاشت آنگاه بود که کوزیما دید گردنی در کار نیست از تن این آسیل ویوس کارگاه جز سری به جان همانده بود سری که با یک ضربهٔ شمشیر استن جدا کرده